به نام خدای یگانی مهربان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 در این مجال افتسانی رو از کشور گرجستان براتون می میکنم به نام چین چرکا برگرفت از کتاب قصه از ازبکستان و گرجستان با ترجمه ابوالفضل فضل آزموده در گذشته دور در سرزمین گرجستان سه برادر با هم زندگی می گردن. اونا آدمای فقیر و بیچیزی بودند روزی یکی از برادرها به برادرای دیگش گفت برادرا تو خونه نشستن برای ما نون و آب نمیشه. باید یه فکری بکنیم برادر دیگه تایید کنن گفت درسته درسته درسته باید بریم و کاری پیدا کنیم وگر از گرستگی تلف میشیم و برادر کوچکتر که چینچارکان نام داشت اضافه کرد و گفت بهتره به روستای اطراف بریم و اونجا مشغول کار بشیم خلاصه برادرها این حرف رو زدن و تصمیم گرفتن و بلند شدن و رفتن اونا رفتن و رفتن از کوها و دشتها گذشتن تا به روستایی رسیدن چینچارکا که کوچکتر از همه بود در همون روستا موند و مشغول به کار شد برادرای دیگم به روستاهای بالاتر رفتن و اونها هم مشغول کار شدن چینچارکا خیلی جدی و سایی بود و از زرنگی و تردستی در تمام اون سرزمین هم تا نداشت وقتی موضوع زرنگی و تردستی چینچارکا به گوش حاکم شهر رسید فورا دستور داد تا چینچارکا رو نزدش ببرند. وقتی چینچارکا نزد حاکم رسید ادای احترام کرد و در مقابل حاکم ایستاد حاکم نگاهی به قد و بالای چینچارکا این و گفت پسر جان میگن تو در تمام مملکت از رنگی و تردستی هم تا نداری درسته؟ چینچارکا تعظیم میکرد و گفت اکبته قربان یعنی امیدوارم همینطوری که مردم میگن باشم حاکم لبخندی زد و گفت حالا که اینطوره خوب گوش کن ببین چی میگم چینچارکا به تندی گفت امر فهمید غربان امر حاکم از جا بلند شد و در حالی که آروم و شمرده قدم میزد گفت پسر جان اینو بدون که در این سرزمین دیوی وجود داره که توی خونش یک کوزه طلا داره به تو فرمان میدم بری و این کوزه رو برای من بیاری بعد به چینچارکا نزدیک شد و در حالی که به چشمای اون خیره شده بود گفت حالا برو و زرنگی خودت رو به من ثابت کن چینچارکا یه کمی فکر کرد و بعد به حاکم گفت قربان امر فرمید یه بیل و یه کلنگ بر من بیارن و دیگه کاری به کار من نداشته باشن حاکم فوراً دستور داد برای چینچارکا بیل و کلنگ آوردن جوون بیل و کلنگ رو گرفت و از قصر چینچارکا بیل و کلنگ به دست به طرف کوهی که خونه دیو در پشتون بود برافتاد رفت و رفت تا به خونه دیو رسید با احتیاط نگاهی به اطراف انداخت نفس عمیقی کشید و فورا شروع کرد به کندن زمین شب تا صبح مشغول این کار بود تا اینکه نزدیکیای صبح درست زیر تخت دیو سر در آورد اون وقت آروم و با احتیاط سراغ کوزهٔ تلا که در گوشه ای از اتاق دیو قرار داشت رفت اونو برداشت اما همین که خواست فرار کنه یهو صدای ظریفی بلند شد که فریاد میزد "زود باشید! زود باشید! زود باشید! بگیریدش! چینچارکا کوزه طلا رو دزدید! زود باشید. معلوم شد یه شیء غیر عادی و طلایی تو خونه دیوه هست که همه چیز رو میبینه و همه چیز رو می‌شنوه. و این صدای همین شیء دیر آدی و تلایی بود که برداشتن کوزه طلا رو به دیوه خبر داد. دیو که صدای نگران کننده شیء غیر آدی و تلایی رو شنید فورا از جاش بلند شد و به این طرف و اون طرف دوید و به دنبال دوست می گشت. اما از دوست خبری نبود. چینچارکا مثل اینکه آب شده بود و داخل زمین فرو رفته بود. دیو، محل قرار داشتن کوزه رو نگاه کردید که اه، کوزه یه سر جاشه با عصبانیت به شیء قیر عادی و طلایی گفت لعنت به تو که با این دروغ شاخ من از خواب خوشبیدار کردی اون وقت ای کشید و دوباره به خواب رفت چند لحظه بعد هم صدای خور و پفش بلند شد بعد از اینکه دیو به خواب رفت چیم دوباره سراغ کوه طلا رفته اما باز همین که خواست کوزه رو برداره هم شیء غیر عادی و طلایی با صدای بلند اعلام کرد کوزه کوزه رو دستیدم این دفعه دیوس خواب بیدار شد و دید که کوزه طلا رو جاشه با عصبانیت فریاد زد آه. لعنتی این وقت شب این چشوخیه ناجوریه که با من میکنی. دیگه اگه تا صبحن بگی کوزه رو دزدیدن من اصلا به حرفت اعتنایی نمیکنم خلاصه دیوه تصمیم گرفتی به حرف شیع قیرادی و تلایی اعتنایی نکنه و با خیال آسوده به خوابش ادامه بده چینچارکا بار سوم به سراغ کوزه گه تلا رفت و اونو برداشت و با وجود اینکه شیء غیر و طلایی خبر دوزیدن کوزه رو اعلام کرد، ولی دیف بدون توجه به حرف اون در خواب خوش سیر میکرد و چینچارکا به سرعت از اونجا دور شد. چینچارکا کوزه طلا رو نزد حاکم برد. حاکم کوزه طلا رو برانداز کرد و با تعجب گفت: مم. باورم نمیشه. باورم نمیشه تونسته باشی این کوزه رو از خونه دیف برداری. خب حالا بگو ببینم چجوری این کار رو کردی پسر جان. چینچارکا تمام ماجرا رو برای حاکم تعریف کرد. حاکم خنده کوتاهی کرد و گفت <تصفيق> پس دیو رو فریب دادی ها؟ چینچارکا با خوشحالی جواب داد در قربان بله حاکم دستی به یه چینچارکا زد و گفت آفره، آفره، آفره، تو پسر زرنگی هستی بهتره بری و کمی استراحت کنی از زحمت تو ممنونم پسر جان چینچارکا؟ با غرور و خوشحالی از حاکم خداحافظی کرد اون در دلش خوشحال بود که تونسته خدمتی به حاکم بکنه و اونو خوشحال کنه مدتی از این ماجرا گذشت تا اینکه حاکم دوباره چین رو خواست و این بار به اون گفت پسر جم به تو امر میکنم دوباره به خونه دیو بری؟ و اون شیء قیر عادی و تلایی رو که سخنگوست برای من بیاری. چینچارکا تعظیم کرد و فوراً به طرف خونه دیو براه افتاد. از ها بالا رفت و دوباره از همون راه زمینی که قبلا چنده بود گذشت و یه راست زیر تخت دیگ سر در بود. چینچارکا به سرعت ولی با احتیاط به طرف شیء تلایی رفت و همین که خواست اونو برداره صدای شیء تلایی بلند شد که کمک کمک چینچارکا منو دزدید و میبره کمک کمک دیو دستی به کشید بعد این طرف اون طرف رو نگاه کرد و چیزی ندید اصلا از چینچارکا خبری نبود که نبود دیو دوباره عصبانی شد و قرش گفت مم مم لعنت به تو و اون چین چرکه که مرتب منو از خواب بیدار میکنین و مزاحم من میشین بعد دیو رفت و دراز کشید و دوباره خوابید چین خوشحال شال شد که دیو از دست اون شیء تلایی عصبانی شده و دیگه حرفای اونو باور نمیکنه بنابراین بدون معطلی شی تلایی رو برداشت و فرار کرد هر باز هم فریاد شیء طلایی توی فضا پیچید که کمک کمک کنید چینچر کامن رو دستیده کمک کمک کمک کمک خلاسه چینچارکا اون شیء طلای سخنگو رو نزد حاکم برد. حاکم هم با خوشحالی بهش گفت آفرین آفرین آفرین این بار هم دیو رو شکست دادی چینچارکا حالا برو و کمی استراحت کن میدونم که خیلی خسته چینچارکا از حاکم خداحافظی کرد و رفت و کمی استراحت کنه اما هنوز چند ساعتی نگذشته بود که حاکم تمکار دوباره چینچارکا رو به حضور طلبید و گفت پسر جان به تو امر میکنم همین حالا بری و خود دیف رو برای من بیاری چینچارکا با تعجب پرسید خود دیف رو ولی قربان حاکم با عصبانیت حرفش رو قطع کرد و گفت همین که گفتم زود برو و خود دیو رو برای من بیار چینچارکا کمی فکر کرد بعد با خودش گفت چی باید بکنم؟ من من با زحمت کزی تلا و شعی تلایی رو آوردم حالا چه چجوری دیو رو بیارم؟ به حاکمم نمیشه جواب نداد کارکار کار سختیه حاکم که سکوت چینچارکا رو دید با عصبانیت پرسید به چی فکر میکنی وقت رو طرف نکن چینچارکا چینچارکا کمی فکر کرد و بعد به حاکم گفت قربان من میرم و این دیو رو براتون میرم فقط دستور بدید ابزار نجاری بر من بیارن و دیگه کاری به کار من نداشته باشن خلاص حاکم ابزار نجاری رو فورا برای چینچارکا آماده کرد و چند ساعت بعد چینچارکا نزد دیر بود جینچارکا به نزد دیو که رسید شروع کرد به خمیاز کشیدن دیو هم به خمیاز کشیدن افتاد بعد با حالت خواب گفت تو همون جینچارکا نیستی چطور جرت کردی یا بازم به اینجا بیایان جینچارکا به تندی گفت چینچارکا؟ من بالام همچین اسمی رو نشیدم دوست عزیز من فقط نجار فقیر و بدبختی هستم که به دنبال تخته میگردم تا صندوق بسازم دیو با خوشحالی گفت چقدر خوب حالا که اینطوره برای من یه صندوق بساز چینچارکا که منتظر شنیدن چنین پیشنهادی بود با خوشحالی گفت چشم چشم دوست عزیز چشم من همین الان برای تو یه صندوق زیبا می سازم و بعد شروع کرد به ساختن صندوق و اونو چنان محکم و بزرگ ساخت که بتونه دیو رو توش جا بده چینچرکا به دیو گفت دوست عزیز اینم هم همون صندوقی که میخواستید فقط فقط دیو با تعجب پرسید فقط چه تینچارکا با تردید گفت فقط شک دارم که اندازه تو باشه کمی مطمئن نیستم شما توش جا بگیرین دیو با حیجان گفت نه ن این اینکه کاری نداره الانم تانش میکنم بعد خودش و و جور کرد و داخل صندوق شد چینچارکا که منتظر چون این فرصتی بود فوراً در صندوق رو بست و با میخ تند تند اونو بیخ کوب کرد. بعد چهار تا چرخ هم برای صندوق درست کرد و اونو به حرکت درآورد تا پیش حاکم ببره. دیو که از این کار چینچارکا خیلی عصبانی شده بود مرتب با دست و پا و سر و سینه خودشو محکم به دیواری صندوق میکوبید و فریاد میزد. منو منویار بیرون پسرک احماغ حالا دیگه شک ندارم تو همون چینکا کاری منو منویار بیرون چینچارکا بی به دیو صندوق رو به طرف قصرها که مجروب پیش با. چینچرکا همچنان خوشحال و پیروزمندانه از جلو میرفت و صندوق دیو رو از پشت سر به دنبال میکشید دیو داخل صندوق دیگه به التماس افتاده بود و این چینچرکا خواهش میکنم من از اینجا بیار بیرون چینکرکا گول میدم، گول میدم اگه وقتم بیرون هیچ کاری به تو نداشته باشم گول میدم چینچارکا خنده کنان گفت چشم <تصفيق> دوست عزیز از اون تو درت میارم فقط اجازه بده در پیشگاه حاکم شهر این کار رو انجام بدم تو بهترین هدیه برای حاکم تمکاری خلاصه. چینچارکا دیگ رو با صندوق پیش حاکم برد حاکم خیلی خوشحال شد و مرتبا بیتابی میکرد که هرچه زودتر در صندوق رو باز کنه و دیو رو ببینه چین چارکا که بیتابی حاکم رو دید گفت قربان قربان قربان عجله نکنین دیو نمیتونه از دست ما فرار کنه فقط امر فرمید اول یه نردبون بلند برای من بیارن اون وقت با کمال میل در صندوق رو باز میکنم و شما میتونید با خیال راحت دیو رو از نزدیک ببینید و از وجود اون استفادهٔ لازم رو ببرید قربان حاکم که رن دستور داد نردبونی آوردن چینچارکا از نردبون بالا رفت و خودش رو به کوه بلندی که در اون نزدیکی بود رسند و از اون بالا گفت در صندوق رو باز کنید قربان در صندوق رو باز کنید حاکم با خوشحالی به اطرافیانش دستور داد در صندوق رو باز کنند به محض باز شدن در صندوق دیو غضبناک و عصبانی از صندوق بیرون پرید و همه رو از جمله حاکم رو بلعید و خورد و با خش به دنبال چینچارکا به این طرف و اون طرف دوید. تا اینکه چشش به چینچارکا افتاد که بالای قله کوه پاها را مش نشسته و لبخند میزنه دیو حصبانی تر شد و به چینچارکا گفت تو چچوری رفتی اون بالا؟ چینچارکا گفت کاری نداره خیرمنای کار رو جمع کردم، اونا رو آتیش سدم و خودمو به داخل آتیش انداختم. اون وقت دود اون من آورد بالا. دیو خنده کرد و با خودش گفت. <تصفيق> <تصفيق> این پسر عجب آدم احمقیه. خودش راه رو به من نشون میده که برم حسابش رو برسان دیو فورا رفت و خرمن کاه رو جمع کرد و آتیش زد و خودش میون اون انداخت تا به گفته چینچارکا به بالای کوه برسه اما افتادن دیو همونو آتیش گرفتن و سوختنش همون چینچارکا با خیار راحت و آسوده از قله کوه پایین اومد و از اونجا که تمام اون مملکت مونده بود و دیو همه اطرافیان حاکم و خود حاکم رو خورده بود چینچارکا حاکم اون مملکت شد و دستور داد برادرهاش رو به نزدش بیارن و با خوشی و خوبی اونجا زندگی کنند. افسانه چین رو از سرزمین گرجستان براتون نقل کردم این افسانه برگرفته از کتاب قصه های از ازبکستان و گرجستان بود با ترجمه آقای ابوالفضل آزموده امیدوارم که لذت برده باشید هزار افسان کار مشترکی است از نویسنده و سردبیر زینت سال دورور ویراستار سعید فریبرز نوربخش اجرا مهران دوستی. صدا بردار فاطمه جلالی تأیید کننده زهرا عبد زاده